دارمان شیطان رکلی الله الرحمن الرحیم و الحمد را عبدالعالمین و صل الله علیه سیده و رسول الله و آله قیبین و قادرین المعصومین و عقص الدارمت العالم داره الله عشمین اللهم مرحبا و به بحث حد صاحب عمده یه روایتی که ما داریم این روایت دیاسه نکلوبه یکن روایت دیگه کاری در که خاص خود ما باشه و شیعه واجهه در روایت بی این مضمون الا هم روایتی که یه علی راسهم امسلی ضربه که اون هم چند اوشن نظره دیگه به معنی اینکه ما در نداره اینکه بسکونی بر وجه به قیاس ابن و اونقدر شکونی صحبت بشه تا اینجوری است جزء اباظه هارمون است اون ابراهیم عرض کنم که به موارد نظر در کلماتی ایشان در همون تحقیق نهایی عرض می کنیم. به مناطبت یا حاله این برداری چند سطحی به قول مروف چند لحظه از وقت سکونی خارج بشیم چون یه نکته یک بیش آمده محکومه نجاشی بعد ترجمه سکونی اسمایل نویدیاد دو ستا نفر اسمی برابنده اسمایل نویدیاد سلمی به این اسم. خوبی یا سره در کرده و از خواب رجعه فیلی هم آمدن این مطلب در اینجا سری تحکیبا هست ولی زن مرموم های چستری هم این همه سخت داره اون کتابا باید اون رو چون کتاب نجاشی که رجعه این و این معناش اینه که ایشون مطلبی بوده به کتابیشون نداره نگر بیم اون شده و راسته شون که.. داگهانه که هر هست شده هستش که بعیده حالی بعید ساب�도 نه که مرموی نجاسی بس یاساس جهاز در صادق و اصحابه فهارسوی که بس وجهاز در شون مرن اصحابه جان از اینکه که احتفاع کنه بر اصحابه جان برایش کی این که خیلی بعیده احتمال این ایشون گفته کتاب حرضر شده من که بعید می دونم. شون مثلا نجاشی وارده زکر و علم اصحاب و رجال همین مقدار بودن همیشه یک سفر و هر حال این مطلب عجیبیسته نیه انصافاً شاید نجاشی حضرت این بوده که اسمایل نعبی زیاد سلمی بیر از اسمایل نعبی زیاد سکومیست حالا این بعدش بود بلا فاسد احتمال داره شاید مخواسته یک تنبیهی بده مرموم کی یکی صاحب کتاب یکی صاحب کتاب نیست مثلا سرمی احتمال دار جایی داره نجوشی که دو نفر که اسماشون نزدیکه یکی صاحب کتاب نیست میاره اون صاحب کتاب متعرض میشه به هر حال صاحبش که الان ما سردرمه مردیم مراد مرموم نجوشی از این عبارت چیه و در کتب رجال هم چون ما رجال متعارفی که الان داریم یکی هم رجال کشیف یک هم درقید. در این دو کتاب هم اسم این آقا نیامده معلوم میشه که مرهوم نجاشی مصادر رجالی دیگري در اختیار شده که ما ازش خبر نداریم د ن که ما داریم نیامده بله در کتاب رجال شیخ توسی که مواصر ایشونه اون هم اسماینرا زیاد از سل زیاد نیست و شیط توسید از فهندس اسمیشون نهبوده فقط تو رجال بخونه آلی چرا زنگیش که تو برز آورده همی کنم واقعا اینکه از نوعات محل به همه که نجاشی این چیزیوی این مثلت به آورده و چلتی داره مثلا در اینچه مزاقه اینکه الان ما هم دریمتیم که تشکیز دونید که این شخص اسماعیده زیاد که ما باید نه رو نعبی میدیاده که ما رو میگه ما که هیچ ما روشنیست تو نجابشه هم میگه من از صحب رجاع کردم شیخ هم از صحب رجاع کردم شیخ از کتاب برگی و کتاب کشی نعبی بودن سورش همون اینجا این نه در برگیم هست و در کتاب کشی هست لذا واقعا برای ما تهیاراییم مثلا قرار است به چند تا نظریه بپردازیم. خب، این احتمالاً می‌شود میان راه تغییر ذهن، یک احتمالی چون بیولوژی در یک گردش کار میکنه گاهی اوقات ممکن یک معلمی من در یک کتابی درو چه نظرش در باشه از اسم که که حقیقت این مطلب رو بخواهید، یک نهج استدراک بر اون کتاب مثلا. در کتاب فهرست ابن نغی که گاهی و باید شهر روزی اسمشه میدن در فهر نبی در مصنفیل شیعه شخصی رو نام اسماعیل اسمایلرد زیاد سلمی آمی کرد و کتابی رو بیشان نصبه میدن یکی از مصنفیل اسماعیل اسمایلرد زیاد سلمیه احتمال داره نجوم که این بوده من آن دیگر چون همه از خوابیم چندتایی که مقرض شدن آی خوی که دنبال ان حرفا نبار ر رفتن بل کرد اما انهای که متعرض شدن مثل مرومم سری آی افتنی به یجور دیر متعرض شده اینا گیر کردن که این یعنچ مسل عبارت در اینجا عبارت نجاشی یعن من یک احتمال میدم که شاید نجاشی نازر به عبارت فهلست عبن ندیم باشه احتمال من ق حز کردم دیدم باید میگو خواد با شد با حفظ سرغن و اینا احتمال میدن عبارت نبید و از ذهن ایشان بوده که دو دو محلقه ایشیه اسمایل زیاد بوده من در فهارس اسمش نگیدم تو رجال اسمش آمده تو فهارس اسمش نگیدن. این ذکر رو از هاور رجال دقیقه پرمید نه اینکه اسم کتاب تغییر خب تو نام فهرت داره یه ندیم از کم فهرت داره یه نام در بازار موجود بوده که کار به سند نداره به اعتبار نداره به حجیت نداره چون ندیم بر راه بوده اصطلاحیزمان بوده و شاید اوشه در وقتها بوده اینا برای اصلا به حدرت مادی مالیشون و شهارشون مثلا بایی دیمیست داره کمیست قطعات داشتن می‌نشست یک کسی که 500 نفرش شدن گفت پس اون کتاب و سلاف در رو استمساق رو کرد مثلا 500 نفرش میشه بیشد بیشد بیشتن کارشن اتشارات اون دماغی گیر بر براغها در اون زمان کارشون به این صورت کار براغها و نه احتمال بیزن با یکشون هیچ کس نزده نگاشی اسم این کتاب رو در واندگاه شیعه دیگه تکرار کنید. لكن چیزی حث ثابت نذید. یعنی در سهارس نبی احتمالاً تو بازار مردم نجاری تقریباً به معنی اکثر اندیمی میذان 70 تا 80 روز گذشته که تقریبا 82 روز میه. احتمالاً میاد بازار میگردن. که شاید مرمون نجاشی نظر مبارکشون بیرین کتاب بوده از اون وردازو ما علفات شیخه شخص دیده نام اسمالیت نزیاز و سننه این کتاب داده ایشون تو اجازه و فهارس ندید این کتاب رو از ایشون بیگه ما اسم این شخص رو در کتب رجال رو خودمون رو دیدیم اما تو فهارس ندید این یک نوع استدراف باشه گفت با مثل کبه همه همه یک نوع استداره که okay. و این از ها بدوند که این کتابی رو که امیندی نسبت داده چندان وزع روشنی نداره یعنی شده از روشن نداره احتمالا این کتاب در این حرف بده. بعد از ورها ها بعد از کتاب ها کتابی رو دهی که از علمان شیر از از اسمایل نبیزیاد از اسمایل نبیزیاد از کنمی نسبت دادن که ما از یعنی خود من احتمال میدم که این این که بود باییان یک نقطه بود که از کرده برای این به مصدر دوبونی چون من یعنی میخوام هم چند تا مصدر بکنم و هم یه وضعی رو از میراس های ارژانی ما که یک کاری و این الان بایش کار بکنیم در بخصا رو شمع من آیت رستاری در خواب موز جند از فرقه 20 و ایشان متعرض ایشان اسماعیل بن عمیدیاد متعرض شد تو عنوان اسمایل بن عمیدیاد شون نجاشه عنوانش اسماعیل بن عمیدیاد <تصفيق> البته من قبل از این که فرم میشو کنم این هم برای ما تحجبارن خیلی تحجبارنه که اسمایل بن عمیدیاد سولمین که کتاب ثابت نداره نجاشه به کفیون سهره اسماعیل و و ما این ده میلیارد صد کلمی که دارم اشکارو هم نمیکنم چیکار خودش امیرکا خونده رو اول کتاب اول اول اول اول اول اول اول اول اول اول قبول اول اول اول اول اول اول اول اول اول اول اول اول اول اول اول اول امون اسمانگیزیاد که کرده اسمش منوز این باشه و صاحب کتاب بودنش هم نحضور نشود. در کتاب ازجاده این پی نجرکی فرمیزه است رجال شیخان جای دیگر نیانه یه شخصی که خیلی دید. از محل کار دوره. از محله اعتبار دوره معذارک مرمون نجرکی اسم اون رو اغله توصیحش هم کرده اسم این سکنونی با این همه شهرت، و با وجود کتاب و با این که خود ایشون کتابش هم خونده نه خود سنگونی سوما برمید کتاب این عجایب کاری عرض کنم افکرم مرموم این کتاب قاموس رو با عنوان تعلیقه و کتاب سنگونی مقال مرموم با مقانی و دست الله و شبه اما به هر دوشون برای فرد کند رو کنم که بشین یکی از اشکالات رضوان هم همینه. مسیگه چرا گفتن به خود ایشون نه؟ حالا یه چیزی که چیز من خود خودشون نشدن مقابل رضوان الله تعالی اگه خود مستقلن کتاب نمی‌نوشتن خیلی بهتره. چون اولا اون جاهایی که مخالف نبودن، متعرض نشدن. همه جا متعرضه رجال نیستن. اون جاهایی که با ما مقال مختلفا متعرض شدن. و لذا رجال تو خیلی نفر یعنی هر مشکلات قاموس اینه. اون جایی که ندارن به همون ماجهاتی کتاب تنگیر و همون اتفاق کرد. هم. لذا کتابیشون اینطوری نقل عنوان فهرست لبو نقل این نقل آرمان آقایی ترتیب کار مرزون تاستری بر رو بشن بشن قائلا از سرکونه ای بارم فهرست که خوندیم و نقل عنوان نجاچی باز محمقانی عنوان نجاچی قائلا یارفت بستکونی از شریعی کندی و نقل عد شیخ لبو فی رجالی فی اصحاب صادر علیه السلام اونم کندی از اون هم عبو. عبو دو تعلیقات اون قسمت هایی که در تنقیه نیست و ایشون مخواهن اشکار بکنن یا مخواهن توضیح بدن یا مخواهن کموزیار بکنه. البته این رسه ای که از اجایی به اونه اینه که کشی بازی بازه به سبونی چیزی نداره این هم خیلی عزیبه شاید هم بوده شکل کرده این هم خیلی عزیبه نجاشی هم خیلی مجمن صحبت کرده اون هم خیلی عزیبه بله و هم در مول برقی که اصحاب صادق احتمال ندیم که هم در رجال از برقی گرفته چون شدیه مونه فقط در آخرش داره یروی انحال اوام <محردم> ایشون درشته که ير و لعلهو محرفو یروی انحال اوام داره یروی انحال نوفری نوفری رو عوام. اوام اصلا ما هم خیلی هنوز نمیدیم این عبارت چیه یروی انحال اوام این چیه این آیشون که اتنان تحریف داده در برگی آقای افتری ما از یک چند سنان اوامه بینیم که یعنی عمل اوام اینجور خونده جمع. شایده مرادش یعنی عمل اوام این از است. این شاید نیست در من که می خونم و از می که و قرزم از سنان اگه تقیید نیست این مرداری احل اشکال بونجوری هم این تعاوی روشی متاسفانه داره یعنی من محاکست داریم سومه من مصنف طب و حرفایی بسید اما مفتیار در بسید اون مصنفا مارد به اون مامانی و خلطه و خبطه خیلی دردامون لی اثبات امامیتی و بسارهی از این کارایی شداره و خوب نیست انصافاً بینه و بین الله شعن ایشان و شعن به علمی از این جوره از اون نظر خورتون او من نظر نیکی انگاه نیم و من از ال... ممولک خسر قور فی الان نظر خود محبوم توستنی ان رجوز عن اصطب تغيب ام کلاکی چون تفصیل نمیوردن اول کسی که ما داریم تعزه به سکونی در تنبیه شدن تغیب ثغالات میراث مجوسی این تعبیر میراث مجوسی و تعبیرات بالغ شده کلیه ادبی می ده میراث مجوسی تغیب لا افتی به مالی اثر دشتکونی در روایت این مال عبارت صدم بعد از صدور عبارت شیف و سر ره شیف و به آمونیت ایشون آمونی هست ایشون یه خوبیش اینه که به خلاف مرمون استاد تقریبا عبارت شیف رو کامل اوبرده فقال لهم من ادالت و مراعات و مراعات مفعول را آیارا ایمان مخواهد فی ترجیح احد الخبرین من برد اتوزیم برد ارزی میکنم که خودشان برد اتوزی فهو ان یکون راوی معتقدن به حق البته این اعتقاد هم و رو در مقام ترجیح گرفته خوب دقیق کنیم نه در مقام ترجیب در مقام ترجیح دو تا خبر بودن اگر یک راویش شیعه باشه امامی باشه مستفسر باشه این مقدم سه قطعا دینه متحرمه همه که بسیاره غیر متهمن غیر متهمن فی ما یعوی و اما ازاکان مخالفن لی اعتقاد یه اصل مذهب یعنی شیعه اثناء شکر باشه برای با من ازالک اندل این مغلی مسلام نوزر فی ما یعوی تحمل می کنیم فی امکان همون ها که به ما یخالفو یعنی از حریف شیعه مخالف داشت وجبت تراح و خبره خبر شبا ترد و این کان هنات ما او اگر موافق داشت وجبت العمل به و این لم یک من و هنات من الفرقت المحبه خبران و یوافق او دارد ولا یو خالفه در مواردی که اصلا خبر نداره شیعه طائفه ای در طارفه شیعه. از طراب شیعه ما روایت نداره اما نه که ما میتونم ما در حد صاحب و حد و الفرس اونی که اشیعه داریم همین یاد را به علاقون رأسه لر بردن وارد نلوی. یک ضربه شمسیو کله شدن فا این لم یکون هونالفرقت مفجد خبرن یو آقو خ... خ... خبر این یک شرط اول للا یو رخو لهم قولون فی قیلت حالانس خبر. فتوان هم نداشته باشن پس دو شرط بهشون گذاشته یک خبر نباشه، دو فتوا نباشه ظاهر بارد حالا من فعل ده همجه نکته رو از مکنم بعد اینشار با سوزیار احتمال میدم ضرحه حد احتمال حدس ها اشتباه نشه شون از بزرگان نشه در جای هم ندیدم این خبران خبرانی آقومون به خاله برو مبنی قومی ها باشه ولای لا یعرف لهم قول قول فيه روی معنای باشه چون ممکن بود در بغداد یک مشهور باشه اجماع با سید مز اجماع باشه تنقه و قبول باشه ولی تو هم نباشه یعنی ایشون میخات بگه که نه خبری شیعه داشته باش در این مسئله نه فتوای علمای شیعه خوب دقت و ولذا این سؤال اینجا مطرح میشه اگر محدود شد مورد عمل درواز سکونی اینجوری باید باشه نه فتواهی برخلاف دارن نه خبر برخلاف دارن یعنی عادتا مستر که سکونی گفته چیز دیگه, دیگه, دیگه کسی دیگه نگفته این عبارت رو با عبارت صدوق چجوری حل بکنی چون صدوق گفت لا گفتی به ما یعنی تر دو به اینه که در که تماما یعنی دو چون شیعه روایت دارن نه شیعه قوی دارن ولا يعرف هم قول فی. اگر اینجوری بود به این دو چالش وجب ایزان العمل رو به اون خبری که مخالف ما narrative کرده عمل بکنیم لما ماهم یعنی ساده علیشان یاد مبارکتون باشه دوزارت کنید استاد تاکید کردن که شیفتوسی طوسی استشهاد کردن به من که ظاهرت استشهاد نمیفهمم ظاهرت که استدلاله این ظاهره به مراد استدلال استشهاد نیست لما روى عن الصادر عليه السلام انه بار آیا خودی دو بار از این تعبیر به استشهاد کردن وقتی در واقع ذهن من که استشهاد نباشه اذا نذرت بکم حادثه لا تجي دون حکمهم که ما روی عنه فرزو الها و ان زمیر روابان علیه هم خیلی واضح نیست یک احتمال داره که در کتب احضا نه در روایات احضا سنه و بخاری مسلم دیگران چه روایتی از امیر داشته باشه احتمال اینه یک احتمال داره چون مخاطب امام صادق و امام بار غالبا اهل کوفه بودن ازا نظرت بخون تقیید مراد اهل مدینه باشه اهل کوفه بودن چیه بیشتر در کوفه بوده. یعنی شما در کوفه مسئله شما که شما که فتواهی ما رو نمیدونید حکم ما رو نمیدونید قول ما رو نمیدونید در اینجا مراجعه کنید الا ما یعنی اهل کوفه باز این احتمال اقرب باشه وشون از در اصطلاح از سنت فقه کوفه رو فقه عبدالله مسئول در یه طالب میدونن خیلی از در کوفه بر گردن به تابعی که از علیه ابن عبی طالب نقل کردن چون سه سال از در کوفه بوده حتی علمای احضر سنت هم اهل کوفه از علیه نسبتاً زیادتر نقل کردن اصلا فقه مدینه بیشتر نامر بود فقه کوفه بیشتر از عبدالله ابن مسعود و علیه بود فنزو الاماره و باید علیه ام تعملو به این عبارت از کلم دیگوی تنیزم از کلم این رواست پیدا نکرده. کی شاهدی در صحتش نیست و عجل ما قلنا پس نظر مبارک شیخ اینه که الان ما میفهمیم. نظر مبارک شیخ این است که ما تعبد داریم به قبول خبرها اگر این رو ما ظاهر نیست آیا دیگه می‌خاد بگن تعبد نیست شیخ مراد جدیش، اینو کنایه کن ثغن امر این اختلاف من با آیام من سرین آقایم استشهاد تحبیر کردن به نظر من استشهاد نیست استدلابه یعنی چرا ما به خبر سنیه ها در اونجایی که ما شیعه خبر نداریم یا قول محروفی نداریم عمل بشه به خبر سنیه ها چون امام سادر فرام فهملوبه این فهملوبه کنایه از هجیه کنایه از تحبه لذابیشون بگید و لحجن ما قلنا عملت طاقه به ما رواه و حفظ و از که ما عدم روایت هفظه روایت در شیعه امام علیه نیست نمیتونی چوریشون اونجور و یاسم نکندو اون که ما عدم در طاقه منحسر به روایتی که از اصحاقه همه همه جهدر همه عبیه همه یاسب نکلو در بین ما روایتش منحصره با یک واسته از امام سادر هم علیه و مهم در راه شرط کنی زاهره ایشون شیه از اون روایتشون خارجه و سکونی سکونی هم توش دار روایت تو بواید داره که قالی از سادر علیه خان لیکن موظم روایت سکونی هم جعبان نبی هم آبانی هم هم و هم در عامه حالا این چیزی عجیبه یک غیر هم در عامه غیر از اینها ان امامت نا علی علیه السلام اینا خیلی عجیبه ام از از خود شیخو در شیعه طوسی ملتفت شدن که صبونی اگه بر فرض از شاذره نروی میکنه و من ملحامه چون اینجا اقوار که ایشون رو از درواز آتویی دید که دوردیم کامل کرد من بوده ملحامه هن ان نام اون پروازی که بود رفتن زولا مارمو و انمیلیم بود اینجا هن ان انمت نام و اینجا در مرک دو قید روی اصابه رو اینجا بوده سی مالای یون بود این که ما رو به شهادت توصیف. فی مالیم یونکرو و نفی کنه این دهو صدا کو. ظاهرا ولی هر از در نو مدار شه توزی از این دو قید هم دو صابر باشه. لكن اول او ملک نش مشوش. فی مالیم یونکرو یعنی قول مخالفتش نباشه. این لمیون که بود یعنی قول مخالف نباشه ولم یکون دهم خلافون روایت مخالف باشه. ظاهرن این طوره لم یکون دهم یعنی نه قول مخالف باشه نه روایت مخالف باشه؟ شد چون این زیب عبارتش این که ابهام ابحام داره اولیت روشن تر بسرد عبارت این کل عبارت نیست شیخ خصوصی در خوده داره یکی من عرض میکنم ترکی باور بر ایمان خب نجوشی که رو در خود به اصداد ها در بابر سکنه می کن بیشون می به طوله ارمان توست داریم ببین من محقه ببینید بعد شیخ توستی ارز کردم مرموم ابن هم داره ابن ازریس عبارت او. لاقصی با مایدتای دوره بعد مرمونه ندریس محقق نشبتا چند موردی در چند کتابش در محترم محتبر را به محتبر راجعه به سکونی آورده محقق محقق و دیگران سکونی جمعه بعد محقق این تصوره کردن که شیخ بخواد بیره سکونی چون سه که انما سکرونی بودن بودنش مانه تصوری محتضیش بوده محتضی به ثابت اون دفت میکنه فقط این تصور بوده که شان آمونیست این مانه نه ایشون این مانه در است که چیه به وقت مخالص را شوشن و قول مخالص را شد لذا محقق اینجور لندن محقق تبرد مهنده کلامه و حالا دار ل همه امامیه مجمعون حضر همه برایته بعد از کلکی محلت حتی آقای دیگه که مورایت که محقف که می دن حتی صلاح تقریبا مرمومه هایی توستری جز به کسان هستند هستن. کسانی هستند که گفتن که شیخ داد بساخت نیم کنه من نهو انزالفه به مرافقه این وقتی به این مقدم و که و خبه دا ان خبر او رو دادان مخالفه خبر امامیه او فتواه امامیه و فرق بود ایشون همینجور کردن که من رفتار گفتن من خود من احتمال دادم خود من که مراد این باشه یعنی اگر سکومی خبر یک که نه با مکتب هم مخالفه نم با مکتب هم مرادش از مکتب قومون در خبر میخواده از مکتب به قبول و در مردان و این نمایه جوز العمل به بی خیمالا بیا کنی لم و خلافه، الاخلافه ولا شوق از من الاخلافه در تصویل بازه و میمازه کرنا یه در حاله ما فی نقضه بحث که اداره اجماع اهل یکت موشحیته و امری که باث به شیء اذهای موشحی به صفحه اجمان شیء اذهای اجماع نگردد بین ما کسا کثروته بر نه قبول صلو معارضه به نظر شیخه در شما شیخ مثلا گفته قبول گزار شدن گل صلو هست فإنك ما کلام الخلو و شیخهما ترا متفقین اینجا متفقین در متفقان منظور فی سقوط خبر خبری فی منفرد به و آرده خبره خبره خبره خبره به خطره ایشون چه آگه هم ایشون که اون عباد شیخ هم عباد در توضیح نداره من تشکال مذرگ دارم نتیجه شبیه صدوق که الا اعمل لا اخفي ما يعني یعنی به یعنی اگر صدوقی خبری بده که سر اون خبر شما ما نباشه درخلافش ن نباشه اون یعنی سرده مورد معنای سرده پس عبارت صدوق با عبارت بشی خصوصیه میشه چون ما یعنی سرده یعنی مطلبی رو یعنی که منفرد باشه ببین معنا که نه شیئه بر خلافش روایت ندارم و نه بر خلافش تقدوا اگر خطا بر باشه یا باشه انفراد نداره اون اگر شیئه روایت در خلافش خطا انفراد رو ایشون میگن متوجه شدی شو ایشون به با یکیه اینطور نیست چون چون از معنی که سکونی اگر جای روایتی داشت که شیره ها یعنی جایی که همه به سکونی جا که از شیره نروایت شده شده شده جای سکونی آهای توستری انفراض رو بگیم معنی کنم براتون برای و زیادا نتیجه که کلام با کلام شیف و من دیگه اینجا به کمی تن شد پیشون از من همیزن نکنم ولی که من رو تکرار نکنیم امن المسنده این براد جان موانین رد معالضت هم قول صدور نقل اجماع شیخ اینطور گفتن کلام شیخ با صدور معالضه بعد گفتن که رد کردن به امن کلام صدور لا دلات فی که چون که کلام صدور در جمع بله خب مرحوم آقای دوست یه فرنگر احمر و اندر وكان جربه می‌ریه از جا گوجارامیه و اینکه لاوفت اون‌ها اندر رو بکند سهر الجربا احمر و خطر خوب نبود که آورده شد اونم قرن 19 نش جرب شاملون در شده خیلی عجیب بود این صدا کتاب علمی من بحثم خوندم ولی ای کارش این چاپ ها اونجا به در می تنن می کنه ولی خودم پیش بوده چاپ جدیدی که جامده در اینکه از اینکه از از نه هیچ مناسب شنه علمی اینست میگرد جرش که خودم داره از الا اندل اصاد درکانه اصلا و معاجم در چون شنه اساسش فروش هم خستر بیده. یزید و فروش هم خیلی انصافت از قاعده اخلاق در این دوست هر به خارج شدن هم اندرم معلوم بشه که این کار کار خوبی هیست تو توسدرین ما این دیگه لرده ایم شاق ما عوامی هست ما یه شاق و دون آره. تو کتاب رنسید شاق و دون این نیست یعنی مناصبش یه کتاب برنم خبیگم این کتاب رو اول که آخر دارم این این جایگردن توان میشی ایشان خوب بود جا پر از این مثلا تا جلده هشتون میاد نوامشون زنده بودن دیگه این بازه بر محاکست تریم به نوامشی داشتن جام به شام کردن ایشون خوب کردن خیلی مردم خوبالازه ایزاره ایزاره ایزاره بزرگاه این مورده در زوریان این کتابشم که شام میکرد کتابش بودن خوده به آموزشی با انتشاراتی که میگیرد هیچ نیازی نیفته کتابش هم نیفته پول نمیگیره. فقط انتشاراتی یک دوره آموزشی است اون سال آموزشی شدن هر از انتشارات پول نمیگیرد سال دوم پول نمیگیرم کلی. و این سنت کتابش همیشه به کردن پیوزه و آموزش دادن اصول شیوهای کودت بود. چرا میباعث آموزش دادن به آموزشان بود؟ باید از خواص این اصلا ایشون احضر کنی گرفتن و همین یکی مسائل نبود کلا خیلی مرد پاکی بود، فوقالازه بودی اشان که کل ایران مثلا بی بود یه نماسو خودشون کاملا پر بوده، نماسوه بود، اول درست بسیارت رو دیگه خب یه کرده ورق و تنوا و ضد و در دنیا بود مرد مولاد یه عبودفهی در محصر کنگی ایمیام هم کم خود در خودش هیچی متفاوت نیست تقریبا اشاره خودش استعدادشون خوبی شده تقریبا زیادی انسان دواج معصره زیاد زیاده نیست میخواد خودش کرد اینها تعبیرهای می نیست یعنی خوب نبود در هم ممکن که یه شکل اما چه سالها قنیشان در کتابها این تعبیر تعبیر خوبی نیست اصلا اینکه ماه هرگز انسان نمی‌خواهد که این باشد، انسان موقع مواظبه کلش باشه که مواد. و اما مابر بر من سکوت رجال شیخ و فیادرز و نجاشی که چرا سکوت کردن ففیده حالا این شروع رو برد کردن چون بعضی ها آنه نگفتن که ایشون و شیخ و شیخ رجل که هاش نگفتن رجالش بعد از ایشون کردن مثل افتراح حسوری میگه به اما در روزه تصویی دارم آمیه. مثل اصل و اماره میبونه اماره میبونه شبه اماره برای اصل که اصل ها یه ها ما خوب که موضوع آها ما اول که باشه فه آمی و المتعون فی فیه. فیه در رجال شد خیلی عبارتیشان خوش عبارت نیست از سکوت اکثر در امامی سالم و مزن فی از الا ما نشینی که تو کتاب رجال شیخ به امامی راست درسته. این یکی در در از موارد اختلاف شانه با موارد همین همی. آن وقت نسبیه دکتر آشکر رجلا را ظاهر امامی است. این دارد. اما زیاده. ما موارد که با رجلا شیخ اسیده در جالبولا. لامات امامی هست. هر با نمونه چوسته دی. در جهت هر قوم نیست. داره. و به قطعه کنیم این همی گفته اگر شد به سیو خود منحش اینه که ایشون رسا امامی در رجالش. نه شاید به تحبیه ایشون من حساب مجموع مجموع کسانه که سباقیه ندارم میشه از اون یه سی سباقیه از کدش میشون یه مرزار شد کتاب در ناغذه رفته در که دیگه و خدر خدر نگونه که این شخص روان ساله. بوده رواهن ساله او به هدف این بود نه هدف این بوده که ای امامی باشه یا امام نباشه بنابراین اون زاویه نظر اشکال هم وارد بشه به ورا نیست نه فقط این پیشو ده خوب در واقع اعتراض نیست که شیعه شورا از حافظه رو بود که امام نیستن چون هدف این بوده مجموعه ای کسانی که کرام عالی اذن مجموعه کسانی که کرام هستند هدف اینه کل هدف ده از اینه و این مشکلی ایجاد نمیکنه این روششون داره بله این محل رو مرموم های داره چون بیرم مرموم داره که هر در شیخ کسی درجات رو هم اینجا بکنه اینجایی زیاد راستان یه هر با مرمومه توستریه این ساطر آوردن شیخ فیلس چرا سنبا ترس های که بود یا به درز هم همه در شیخ فقط عدد سلاثه مورد از سلاثه اولی و دومیس که اولی فقط عدد از عدد فائل شیخ توصی. فقط عدد شیخ را ابو برد رحمه رو برده اصحاب رسولان فقط عدد سلاثه به مدران پی اصحاب نبی و سرمه محلی و سکرد و زیاد زیاده نبی و عبید الله اصحاب علی و سکرد راسته افتیاج میناد رایی حسین بودش با مدتی فرمانده در, در فاس سر سر بود من معاویه به شما نینده که در خودش بعد در حتی کارنی معاویه به شنش رفت گفتی معاویه در از این حنفا بود بعد اون طرف رو بر بده. و کهی که اونو کلومن حده و شیخ رجافی اصحاب سادر امامی هم وقت سر رحل مفید و ام نام جمعه و اصحاب سادر علا اختلاف آرامه به مقالات راست به همگن با مفیده و همگن با مرموز ستریه ما مجموعه رو که آتیشی رو بیریم شیعه و شیعه داریم هر قدید رجال در اینجا نظرشون روباق علا امام بر ممکن بود غیر امونی و قد احمر از فهرست اکر از زعبا فهرست شهر توسی حتی مثل سبجاده الذي هو از افوز زعبا این رو هم توضیحاتش چندبار چند بار کردن خیلی ویژا از کارایست که برمون مهمه های شستهی کردن قدردیش من ندیدن چند دفعی توضیح دادم مثلا یک کسی رو نجاشی که میکنه کتاب بر زفت میکنه شیخ در داره نه در رجال کسی در فهرز مرحوم آشوستانی متنبه شده بیگه بعدم از اینکه شهر ده اون پر فهرز بسند بعدم شهر ده اون پر و رجال قبلت رو از که من که اولین کسی که متفکم شده که نجاشی در فهرز و کتاب بهشون داده و شهرش توضیحاتشه اسب کردن نکته داره اینطور نیست که اهل باشه توضیات صابق اش این مورد بود توضیات چ که قبللب نیست اینا رو کیشون یا میگه بلی. و که که نجاش. نجاشی و نجاشی کسی هم مهممر راسته خود دیگه میگه منش میشون اصاب مت در نقاط مختلف کره زمین هستن زمین هستن ما نمیتونیم بههاط و ااع پیدا بکنم احمال من بزه. و یش حلول عامیتی، حالا شاهد بر اینکه شکونی سنیز مضافا الا تسیه اودت الشیخ با عامیته تعبیر و ابن صادق علی به جعفر راسته در اکثر روایات شکونی جعفر ان جل محمد علی ان و كون روایاتی علی علی السلام غیر منکعن خطا <تصحیح> اصطلاحی ایشان در هم که از امام صادره از خود امام نیست اینم درسته بل مسنداً ابویه علیه السلام علیه انا عارفم کتاب که الان داریم مختلف تعابیرش تا تعبیر صحیحش یکیه در شده این تعبیر صحیحه که نسخه اصلی سرودی نه ان انا انا ان ان این تعبیر درسته طلاقا در که ان ان علیه. ان, ان, عبیه ان, علیه. ان, ان, ان علیه. همه تاکید شده اون متن دقیقش اینه ان جعفر انا امام باقر بین امام باقر و علیه تنصیه میکنه همه در کتاب مصادرش میکنه مصادر اینجوری زید بن علی بن حسین آن عبیه الحسین آن عبیه علي النبی فرمیم. تا اینجا فرم نوشتی تحلیل مباحث کنید رو چه در کتاب مسند زید تفسیر میکنه که زید از امام سجاد ایشون از امام حسین، ایشون از امام رضوی. اما ترور واد سکونی تفسیر اینجوری جوی نقطه نفیف فرمیم. ما آمار واد سکونی زیاد داریم توش دخالت هرگونه شده. اون متن سریع اگر بخوام باز درخندیه. ان جرفه ان عبیه باز بعدش نداره ان عبیه ان آبایه بعدش رو بعد از امام صادق رو ان آبایه داره یعنی حضرت سجاب امام حسین رو برمان ده ان آبایه ان علیه اون وقت بعضیاش قال بعضیاش قال قاله اگر قال بود، نه خود همین رو قال قال نه قال. قال. قال. یعنی قال رسول پس کتاب سکونی انشاء روشن شد چه توضيح ندرد متن دقیق کتاب سکونی اینجوریه البته بلکه الان تموذیاتی شده الان در جای قاله دارم مولا رسول داره در جای یه قاله داره مولا علی اما اون معنی بدینه انجرف یعنی ابیه ان ابائه ان, ان, ان علی قال یعنی علی ال قال قال دلنه رسول دلنه. این در قبل بفرده که چون ارشد بشه و قب و قومی قب... روایتی غیر منشه از خود کلام امام نیست بل مصمد ان آبائی همس کنم ان عبیه ان آبائی علی... ان علیه ان علیه علیه سلام اول نبی درسته این محنبیشان درسته کم محنب آهو دیدن هم علیه السلام من هم این تعدیف تعدیف که از مخالفی و عنوان در این چند عنوان امده بود بدون نسبت اله و امکانو افو از این که آمم نگفتن ایشون راقزیه میشه که واقعا آممیه ایشون شواهی بیوردن بر بودن اجمالا درسته آره هم درسته البته آره هم تعینه که خیلی دیاده بیشتر باشه من خودم براجعه نکرم تعبودن نه اما زیادی که من تازه من جعفره به هر بایشون حالا کن آیتنهی هم خیلی مراجعه کردن ایشون اسم ایشون نبوده اسم مرمو آیت توستری رو و که سعی کرده جواب بده چون آیتنهی کتابهشون رو بعد از مرمو توستری نوشتم بعد از قاموس شاف کردن به عبارات توستری خود آیتنهی هم نازرم خیلی کم زیاد نه نازرم به عبارات توستری چونم قبل از موجن آ صلی الله <سؤال> علی محمد